اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت به نام خداوند بخشنده بخشایشگر هنگامی که واقع عظیم قیامت واقع شود لیس لوقعتها کذبه هیچکس نمیتواند آن را انکار کند رافعه این واقعه گروهی را پایین میآورد و گروهی را بالا میبرد در آن هنگام که زمین به شدت به لرزه در میآگرد وسطجیبل و, و کوه در هم کوبیده می شود. فكانت هباء منبثا و به صورت قوار پراکنده در میآید وگونت و شما سه گروه خواهید بود فصفمايمنتما آصفابمایمنا نخست سعادت مندان و خجستگان. چه سعادت مندان و خجستگانی و اصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمه گروه دیگر شقاوتمندان مندان و شومانند چه شقاوتمندان مندان و شومانی و السابقون السابقون و سومین گروه پیشگامان پیشگامند اولائی المقربون آنها مقربانند جنات در باغ های پر نعمت بهشت جای دارند صلت من گروه زیادی از آنها از عمت های نخستینند وقالین مناخیرین و اندکی از عمت آخرین آنها، مقربان بر هایی که صف کشیده و به هم پیوسته است قرار دارند متکئين در حالی که بر آن تکیه زده و روبروی یکدیگرند نوجوانانی جاودان پیوسته گرداگرد آنان می گردند باکواب و اباری و, با و کوزه ها و جام های از نهرهای جاری بهشتی و شراب تهور لا یصدعون عنها و اما شرابی که از آن درد سر نمیگیرند و نه مست میشوند و فاکهت من ما یتخیرون و میوههایی از هر نوع که انتخاب کنند و لحم طیر من ما یشتهون و گوشت پرنده از هر نوع كه مایل باشند و حور نعین و همسرانی از حور العین دارند که امثال المكنون المکنون همچون مروارید در صدف پنهان جزاء بی ما کانو یعملون اینها پاداشیست در برابر اعمالی که انجام می دادند لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما دران های بهشتی نلق و بیهوده اینی شنوند نه سخنان گناه حالود إلا قیلاً سلاماً سلاماً تنها چیزی که میشنوند سلام است سلام و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب یمین و خجستگان چه اصحاب یمین و خجستگانی؟ آنها در سایه درختان سدر بیخار قرار دارند و طلح منضود و در سایه درخت تله پربرگ درختی خوشرنگ و خوشبو و ظلل و سایه کشیده و گسترده و ماء مسكوب و در کنار آبشار ها و فاکهت و میده های فراوان لا مقطوعه ولا ممنوعه که هرگز قطع ممنوع نمی شود و فرش مرفوعه و همسرانی بلند مرتبه اینا ان ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم سجل و همه را دوشیده قرار دادیم رو زنانی که تنها به همسرشان عشق میوزند و خوش زبان و فسیح و هممس لی اصحاب الیمین اینها همه برای اصحاب یمین است ثلت من الاولین که گروهی از امتهای نخستینند و ثلت من الاخرین و گروهی از امتهای آخرین و اصحاب شمال ما اصحاب شمال و اصحاب شمال چه اصحاب شمالی که نامی اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده می شود و آنها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند و, حموم و در سایه دودهای متراکم و آتش سا لا بارد ولا كریم سایعی كه نه خنك است و نه آرام بخش إنهم كانوا قبل ذلك مترفین آنها پیش از این در عالم دنیا مست و مقرور نعمت بودند وكانوا يصرون على الحنث العظیم و بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند و كانوا يقولون اذا متنا و كن لا ترابا و عظاما ا ان لا مبعثون هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد او یا نیاکان نخستین ما برانگیخته می شوند؟ بگو اولین و آخرین همه همگی در موعد روز معینی گردآوری شوند ثم اینکم ایوها الضالون المكذبون سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده لآکنون من شجر من زقوم از درخت زقوم میخورید. خورید فمالعون من هلبقون و ها را از آن پر می من الحميم و روی آن از آب سوزان می نوشید شرب و همچون شتران مبتلا به بیماری اتش از آن می آشامید نزلهم الدین این است وسیله پذیرایی از آنها در قیامت نحن خلقناكم فلولا تصدقون ما شما را آفریدیم پس چرا آفرینش مجدد را تصدیق نمی‌کنید؟ کنید؟ ایتم آیا از لطف ای که در رحم میریزید آگاهید؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا شما آن را آفرینش می دهید یا ما آفریدگاریم؟ نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر ما پیشی نمی گیرد ان نبدل امثالکم و ننشئکم لا تعلمون ها گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمیدانید آفرینش تازه‌ای بخشیم. ولقد علمتم شما عالم نخستین را دانستید. چگونه متذکر نمیشوید که جهانی بعد از آن است؟ ما آیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟ انتم ام نحن آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟ لو حطاما فضلتم هرگاه بخواهیم آن را مبدل به کاه درهم کوبیده می کنیم که تعجب کنید بگونه ای که بگویید به راستی ما زیان کرده ایم محرومون. بلکه ما به کلی محرومیم آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید آتم انزل من المزن ام نحن المنزلون آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل می کنیم؟ لونش او جعلله او تشکرون هرگاه بخواهیم این آب گوارا را تل خشور قرار میدهیم، پس چرا شکر نمی کنید؟ افرأيتم النار التي تورون. آیا در باره آتشی که میافروزید فکر کرده اید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ نحن ما؟ آن را وسیله یادآوری و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده این حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن سوگند به جایگاه ستارگان و محل طلوع و غروب آنها و, لقسم لو تعلمون عظيم و این له قسم له تعلم و این سوگندی است بسیار بزرگ اگر بدانید. این له قرآن کریم. که آن قرآن کریم است. فی کتاب مکنون. که در کتاب محفوظی جای دارد. لا يمسهون یلا المطهرون. و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده انتم آیا این سخن را سست و کوچک می شه و به جای شکر روزی هایی که به شما داده شده آن را تکذیب می کنید؟ فلولا اذا بلغت پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسد توانایی بازگرداندن آن را ندارید و, انتم و شما در این حال نظاره میکنید و کاری از دستتان ساخته نیست و نحن اقرب ایلیه منکم ولیکن لا و ما از شما به او نزدیکتریم ولی نمی فلولا ان کنتم غیر مدینین اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمیشوید ترجعونها این كنتم پس آن روح را بازگردانید اگر راست میگوید فا اما این کان من المقربین پس اگر او از مقربان باشد فروح و ریحان و جنت نعیم در روح ریحان و بهشت پر است و اما, این كان من اصحاب اما اگر از اصحاب یمین باشد فسلام لکه من اصحاب به او گفته می شود سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمین و اما این کان من المکذبین الضالین اما اگر او از تکذیب کنندگان گمراه باشد فنزل من حمیم با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود و تصلیت جحیم و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است إن هذا له حق مطلب حق و یقین است فسبح باسم ربك العظیم بح نام پروردگار بزرگت تسبیح کن